خوبین خوشین سلامتین همه چی ردیفه دیگه بوشتشه ایتون کرد انگار نتایج نهایی انتخابات خبرگان تهران هم اعلام شد و دیگه آقای جنتی هم بالاخره با تک ماده که شده ته لیست و به عنوان نماینده ته جدولی رفت تو خبرگان عجب انتخاباتی بودا شوخی شوخی لیست انگلیسی برنده شد و خبرگان الان فقط با یک استوان قراره به چرخه این حساب الان نیست از انتخابات بعدی نماینده شورای نگهبان موقع انتخابات بشینه جلو صندوق دونه دونه صلاحیت رای ها رو هم سوال جواب کنه چک کنه کسی رای انگلیسی وقت نهاندازه تو صندوق وای وای وای فکر کن حتی الان میخندینا ولی باور کن به اینجا میرسیم آقای مصباح که یکی از استوانه های بررا و نظام بودن و متوستفانه پشت داره. خبرگان موندن از نظر تئوریک مقدمات این مسئله رو هم مطرح کردن البته بشنبین فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقی نصف تا تاغود است. مردم تعییم کردن این که جمهور یا دارش حکومت کنه ارکامی خود بکنه مردم چه حق داشتن مردم چه که به کسی حق بندن؟ که خودشون داره هم بحثشون هم درین. اصلا اینم داشته باشه. خیلی خوب الان باید باشه مدیریت مردونه. همه مردم قبولش داشته باشه. او حق به پولش دادن علما بله مردم چیکاره؟ اصلا شما چیکارین ایشون فرمودن. کاری ای نیستین. گرفتین چی شد؟ البته فعلا در حد تئوری و از نظر آقایون فعلا صندوق رأی در حدی که الا قبل شورای نگهبان کاندیداشو رو کرده باشه قابل قبوله ولی اگه مردم بخوان باز از این کارا بکنن و از این انتخابی که شورای نگهبان بهشون داده سوء استفاده کنن دیگه معظمله ناچار یه فکرای دیگه ای بکنه اینه که از آزادی هایی که بهتون داده میشه برای رای دادن لطفا سوء استفاده نکنین مرسی احبا